بسم الله الرحمن الرحیم حساب رو رسیدیم به تصحیح مسئله ببینید می گاهی می‌بینیم که اصل مسئله رو ما پیدا کردیم سهم هر گروه رو مشخص کردیم ولی می‌بینیم که سهم بر تعداد اون گروه بدون کسر قابل تقسیم نیست با عدد صحیح قابل تقسیم نیست. مانند این که شخصی فوت کرده چهار زن دارد با یک پسر اینجا چهار زنش میبرند یک هشتمه مالو باقی مانده که هفته مال ابنه باقی مانده ابن میبره ولی می‌بینیم که از یک هشتم یک هشتم هشت میشه یک اصل مسئله رو از هشت میگیریم سهم زنال میشه که چهار نفرند یک چهار نفرند سهمشون شد یک یک تخصیب بر چار نمیشه میدونی که میگیم اینجا انکسار پیش اومده این مسئله نیازه به تصحیح داره خب چرا چون سهل بر میراست بران قابل تقسیم نیست سهمشون یکه تعدادشون چهار نفرن زنان اینجاست که نیازه به تصحیح میشه اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا بحث ساده هست ولی یک کاش که ما تصویری میبود و صوتی خالی نمیبود بود بحث ریاضیش هست. در هر صورت اینجا میاییم نسبت بین یک و تعداد رؤوس دیگاه میکنیم که چه نسبتی هست یا توافق وجود داره یا تماید تماسل نمیتونه پیش بیاد چون اگر مثلا سهمی اینا چار بود و تعدادشون هم چار اون موقع دیگه نیازی به تصحیح نموند در جای مسئله در نسبت بین سهم و عدد رؤوس همیشه یا تباین وجود داره یا توافق وجود داره از این دو حالت خارج نیست یا تبایون یا توافق یا تبایون یا توافق در این مثال ما تبایون وجود داره چون ارتباط بین یک و چار تبایونه. اگر تبایون وجود داشت تعداد رؤوس رو ضرب اصل مسئله می کنیم. چند نفرن تعداد شد چار نفر میان چار رو ضرب اصل مسئله میکنیم که هشت هست چار هشت میشه شه تا. از هشتا یک هشتومش می شد هشت از سی دو یک هشتومش میشه یک هشتمو که ببرند از سی و دو تا میشه چار چار نفرن هر یکی یکی پس قابل تقسیم شد اینجاست که میگویم مسئله تصحیح شد از اصل مسئله هشت بود تصحیح میشه از چند؟ از سی و دو. پس ولی اینجا چند حالت وجود داره یک اگر انکسار در یک گروه بود که مسئله ساده هست اگر نسبت بین سهم و, ب... و تعداد یا عدد رؤوس تبایون بود خب عدد رؤوس و زرب داره اصل مسئله میکنیم مثل همین ای که بیان شد اما اگر توافق وجود داشت اما اگر چی وجود داشت توافق وجود داشت اونجا وفق عدد رؤوس و زرب اصل مثله می مثالی از کتاب رایت براتون ذکر کنم. شخصی فوت کرده شوهر داره با دو پسر و دو دختر شوهر میبره یک چارو به مالو پسران و دختران عصبه چون پسران دختران رو عصبه کردن پس باقی مانده رو میبرند اونا یک چارو میبره شوهر باقی مانده رو دو پسر و دو دختر اینو قبلا هم گفتم تکرارش میکنم که دو پسر دو برابر دو دختر میبرند. برای حل این مسئله خیلی کار درستی این میراسی ها یا این ریاضیدان ها کردن و اون این هست که پسر رو دو نفر حساب کردند زن رو یک نفر که راحت مسئله حل بشه پس اینجا که ما دو پسر داریم با دو دختر دو پسر رو دو تا دو تا حساب کنیم هر پسری رو میشن چار تا با دو دختر شیش نفر تعدادشون شد شیش نفر هر پسری دو تا دو پسر میفهم میشن چار تا با دو دختر شیش نفر ما نفرشونو شیش تا حساب میکنم خب. که بعدن هر یک پسری سهم دوتا رو بر میداره الان س... شوهر برد یک چارو مالو اصل مسئله رو گرفتیم از چند؟ از مخرجش که چار هست از چهار یک چارو به چار میشه یک شوهر برد یکی رو سه تای دیگه باقی موند دو پسر با دو دختر که دو پسر رو دو برابر بدیم میشن چار نفر با دو دختر شیش نفر میبینیم نسبت بین تعداد با سهمشون چه هست؟ توافق هست شیشو شش نفرند سهمشون سه هست اینجا دیگه توافق تداخل نداریم دقت داشته باشید در میراست بین نسبت عدد رؤوس و سهم یا تبایون یا توافق یا تبایون یا توافق دیگه تداخل همون توافق. خب این بحث فعلا ما بحث طولانی نمی که چرا. پس یا توافق یا تباین. اگر تباین بود تباین، اگر تداخل یا توافق. توافق بود در هر دو صورت بهش میگیم توافق وجود داره. پس 6 و سه میگیم توافق وجود داره بینشون. در این صورت زمانی که تباین وجود داشت در مثال قبلی توضیح دادیم که عدد رؤوس را ضرب اصل مسئله می‌کردی ولی زمانی که توافق وجود داشته باشه وفقه عدد رؤوس رو ضرب اصل مسئله می‌کونیم اصل مسئله چه 4 بود محل توافق 6 و 3 چند است 3 است 6 تقسیم بر 3 میشه تو؟ پس وفق عدد روز که شیش نفر هستن چند هست؟ دو هست. وفقش دو هست. 6 تقسیم بر سه چند در میاد دو. اینو میگم وفق عدد روز دو رو میام اینجا در اصل مسئله زر کنیم اصل مسئله چارم بود دو چارتا میشه هشت. از هشت یک چهارم هشت چند میشه؟ دو میشه. دوتا تا رو میبری زوج. شیش تا دیگه باقی میمونه برای دو ایبن و دو بنت ایبنها دو برابر میبردن از بنتها پس هر ایبنی دو میبره میشن چار تا دو تای دیگه, دیگه باقی میمونه که هر بنت یکی رو میبره این شد حل مسئله زمانی که انکسار در یک گروه بود اگر بین سهم و بین عدد رؤوس تبایل بود تعداد رؤوس و ضرب اصل مسئله می کردیم و اگر توافق بود وفق عدد رؤوس و ضرب اصل مثله می کردیم اما اگر انکسار در بیش از یک فریق باشه اگر انکسار در بیش از یک فریق باشه این میتونه در دو گروه پیش بیاد در سه و در چار و در یک ما رو که توضیح دادیم حالا اگر اومد در دو یا سه یا چار پیش اومد اینجا چکار میکنیم؟ اینجا ما دو نگاه نیاز داریم یک ابتدا می نسبت بین سهم و عدد رؤوسی رو که سهم بینشون قابل تقسیم نیست نگاه میکنیم یا توافق یا تبایون یک گوشه یادداشتش میکنیم بعدن میانیم نسبت بین اون عددهای یادداشت شده رو نگاه میکنیم که چه نسبتی با هم دیگه دارن یا توافق یا تماسل یا تبایون یا تداخل حالا اینجا دقت داشته باشید یه مسئله رو با هم حل میکنیم اگر توافق بود حل کنیم امثلهای رو از کتاب الرائد انتخاب کردیم. دقت داشته باشید شخصی فوت کرده سه دختر داره و سه خواهر شقیقه سه دختر با سه خواهر شقیقه سه دختر سهمشون میشه چقدر؟ دو سیفوم چون اگر دختر بیش از یکی باشه سهمش دو سیفومه خواهران همینجا شقیقه معغیرند عصبه معغیرند یعنی باقی مانده رو میبرند پس دو سوم به مال میشه مال سه تا دختر باقی مانده میشه مال تا خواهر شقیقه حالا اینجا دقت داشته باشید در این مسئله در این مسئله ما مسئله اصل مسئله رو میگیریم از سه چون مخرج فرض دختران هست مثلا رو گرفتیم از سه دو سوم سه میشه چقدر؟ میشه دو پس سهم سه تا دختر میشه دو دو بر سه قابل تقسیم نیست این انکسار در این گروه, گروه باقی میمونه یکی دیگه اون یکی سهم سه تا خوهره بازم قابل تقسیم نیست انکسار بازم پیش اومد در دو گروه پیش اومد یعنی اینجا هم سهمه خاهران بینشون قابل تقسیم نیست و هم سهم خاهران بینشون قابل تقسیم نیست سهم دختران دو دختران تعدادشون سه سهم خواهران یکیه که تعدادشون هسته اینجا ما دو نگاه میاندازیم یکی نگاه بین سه دختر و سهمشون که دو هست میبینیم تبایل وجود داره چیکار میکردیم توضیح دادم عدد رؤوس و ضرب اصل و اصله میکردیم ولی اینجا با دو تا اینکسار داریم پس عدد رؤوس و اینا رو یک گوشی یادداشت داشت و افقشون نه چون اینجا تبایل وجود داره بین دو و سه چون تبایل وجود داره عدد رؤوس که حسن سه تا دختر هستن یک گوشه یادداشتش داشتش میکنیم سه رو کردیم بیاییم بین خواهران میبینیم که یک و سه باز هم تبایونه پس اینجا عدد رؤوس رو هم یک گوشیات داشت میکنیم سه نگاه دوم ما بین این دوتا سه هست بین سه و سه ارتباطی وجود داره؟ آیا تماثل وجود داره؟ توافق وجود داره؟ تداخل وجود داره؟ یا تباید؟ میبینیم که تماثل وجود داره پس یکی از این دوتا رو انتخاب میکنیم زرد در اصل مسئله میکنیم اصل مسئله ما در این مسئله از سه بود؟ سه رو در سه زر میکنیم میشه نه میشه نه دو سوم نه میشه چقدر؟ شیش شیشتا میشن مال ستا بند هر یکی دوتا گیرش میاد میمونه ستا دیگه واسه خواهند هر یکی ایکی رو بیبره اینجوری حل شد پس اینجا ما دو نگاه داریم خب اگر من بیام مثال برای تباین بیارم بعد از این که ما اومدیم و این عددهای ثابت شده رو که یک گوشه گفتم به یا رواجع که بهشون میگند گند برشون تماسل بود یکی رو انتخاب می کنیم. اگر توافق بود وفق یکی از این دوتا رو در دیگری ضرب می کنیم هر چقدر جواب در اومد در اصل مسئله ضربش می مسئله تصیح میشه. اگر تداخل بود عدد بزرگتره رو میگیریم و در اصل مسئله ضرب میکنیم زمانی که این در بیش از یک گروه بود و اگر توافق بود این دوتا عددی رو که یک گوشه نوشته ایم در همدیگه ضرب میکنیم هرچقدر نتیجه شد در اصل مسئله ضربش میکنیم دیگه اگر برای هر یکی از اینا مثال بیارم مسئله خیلی طولانی میشه اون هم متاسفانه صوتیه و شما چیزی رو نبیبینید ای کاش که امکانات داشتیم و تصویری می‌بود. حالا با این مقدمه میاییم شروع میکنیم بحث تاسیه مسئله رو بس تصحیح مسئله است که و ترس سهام لیست تنقسم علی ذوی المیرس فتبع مارسیم اگر دیدی که سهمها تقسیم نمی بر زول میراس بر اون تعداد که ارس بی برند فتبع باروسیم پس پیره می کن که مشخص هست اون راه و رویشی رو که میراسی ها مشخص کرده اند و طلب طریق الاختصار فی العمل بالوفق و الضرب جانب که و انتخاب کن راه مختصر رو در این کار یعنی در تصفیح مثل بالوفق والضرب بیو جانب که زل با اگر نسبت بین سهم و بین عدد رؤوس توافق بود بس سوشيش. اصل مثل همون سو شیش وفق شیشو بگیر زر داره اصله مثله بکن اگر نسبت بین صحب و عدد روس توافق بود و ضرب و ضرب اگر نسبت بین صحب و بین تعداد روس تبایل بود اینجا عدد رؤوس و ضرب در اصل مسئله بکن دیگه وفقشون ها عدد رؤوس و خودشون مثل بس به سال قبلی که چارت خانم داشت و سهمش یکی بود. ما عدد روس و ضرب داره حشت بی کردیم که اصل مسئله بود در هون مثال. پس واطلوم طریق الاختصار فی العمل تلم کرد راه مختصر رو در اول بالوفق و ضرب بیانیم که زلل با وفق و ضرب. چرا؟ ببینید باز هم تکرار بکنم یا نسبت بین سهم و عدد روس توافق یا تباید. دیگه تداخل و تماسل اینجا نداریم. در نسبت بین صحب و عدد رؤوس یا توافق یا تبایون اگر تبایون بود عدد رؤوس و زرد در اصل مسئله بکنیم مسئله تحصیحی میشه و اگر توافق بود وفق عدد رؤوس و زرد در اصل مسئله بکنیم مسئله تحصیحی میشه وردد الى الوفق الذي يوافق و في الاصله فانت الحاذق و باز بگردون تعداد رؤوس رو به وفق شود. اگر توافق داشتن با سهام. وضربه في الاصل و در اصل مسئله زار مشکل انت الحاذق تو در اون صورت ماهر هستی. حاذق هستی. چیره هستی. آلبه قوی هستی. انکار جیرسون واحدا او اكثر اگر یک جنس بود یا بیشتر فرقی نمی کنه. اگر یک جنس بود یا بیشتر همیشه نسبت بین سهم و عدد روس یا توافق یا تبایوت فحفظ و دعن جدال و حفظ کن و از خود جدال و مراء که همون جدال هست رو ترک کن چون در جدال بر باطل هیچ خیری وجود نداره و کسر علا اجناسی حالا تا جای کار ما گفتیم یا انکسار در یک گروه پیش بیاد مثل ساله قبلی یا در بیش از یک گروه پیش بیاد که اگر در یکی بود خیلی ساده بود ولی اگر در دوتا یا تا یا چهارتا بود بازم ساده بود ولی اینجا دو نگاه نیاز بود یکی نگاه بین نسبت بین عدد رؤوس و صحبشون که یا توافق بود یا تبایون یکی نسبت بین اون عدد های ثابت شده یا رواج که با یک گوشه می نمیشتیم باز هم جلوتن زکرش میکنیم و امکانه و علا اجناسی اگر کسر در چند جنس بود یعنی در چندین فریق و در چندین گروه بود اگر کسر در چندین گروه و چندین فریق بود اینجا دیگه مسئله فرق میکرد حالا یه مثال میزریم یه مثالی رو میآوریم که ادکسار بر دو گروهه چون صوتیه دو گروه انتخاب میکنیم که ساده تر باشه این دو نگاه نیاز داری و این کسره على اجناسی و اگر دیدی که کسر پیش بیاد بر بیش از یک گروه فانها في الحکم اندن ناسی درون صورت این اجناس یا این فرق در حکمشو نزد مردم یا نزد بیراسی ها تحصرو فی اربعت محصور هست در چهار قسم یعرفو ها و فی که در احكام ماهره این چارتا قسمو بیشناسه یا تماسل یا تداخل یا توافق یا تبایوت مثل مثالی رو از کتاب رای داوردم این رو توضیح میدم که منظورش چه هست شخصی فوت کرده شوهر داره سه تا دختر داره سه تا دختر پسر داره با سه تا خواهره پدری یا تا دختر داره یا تا دختر و پسر فرقی نمیکنه ابو دقت داشته باشید شوهر یک چارم نیداره دختران پسر که ستا هسن دو به مالوم بیبرن خواهران پدری عصبه هستند دو نفر تعداد هست زوج که سهمش یک چارمه تا دختر پسر دو سوم اینجا اصل مسئله رو ابتدا پیدا کنیم. مخارج ها رو نگاه می که یک چهارم داریم و دو سوم رابطه بین چهارشنبه تبعیضه سه روز امدری چهار می کنیم میشه دوازده. اصل مسئله رو میگیریم ابتدا از دوازده. پس اصل مسئله رو گرفتیم از دوازده یک چهارم دوازده میشه چقدر؟ میشه سه ستاره میبری شوهر. دو سیو میشه چقدر؟ توازه تقسیم برسه میشه چهار ضرب در, در دو که میشه 8 حشت پس هشتا تا میشه صاحب دختر سه تا دخترن صاحب شد 8 سه تا رو برد شوهر 8 تا رو برد سه دختر با هم یازده یکی دیگه باقی میمونه تا دوازده میشن اصل مسئله کامل بشه یکی رو میبره دوتا دختر اینجا میبینیم سه تا دختر پسرن سه نفرند سه قابل تقسیم نیست و خواهران هم دو تا هستند که یکی باسند قابل تقسیم نیست پس اینجا انکسار بر دو جرس پیش بر دو گروه و دو فریق پیش اومد اینجا چیکار میکنیم؟ نگاه اول اینه که میبینیم سه تا با هشت با همدیگه تباین دارند اگر توافق داشتند وثق عدد رؤوس انتخاب کردیم ولی اینجا تباعد وجود داره یعنی سه تا دخترند و سهمشون 8 تا پس سه رو یک گوشی یاد داشت می‌کنیم بریم در گروه بعدی که الکسار وجود داره یعنی دو دا دو تا دختر که سهمشون یکی هست بی بریم یک و دو باز هم تباعد وجود داره پس عدد رؤوس رو یک گوشی یاد داشت میشن دو تا الکسار در دو گروهه ما سه رو یک گوشه ثابت کردید به اضافه درو بگیمت سی و دو میگن اعداد مثبته ثابت شده یا مثبته یا رواجه حالا قام دوه ما همینه که کتاب میگه میگه اگر و انتر کسره الاجناس کسر در بیش از یک گروه بود که اینجا در دو گروهه، فا انها فی الحکم اندن الناس تخترو فی اربعه اتی میگه حکمش در نزد اردی در چار قسم منحصر میشه یعنی ارتباط بین این دو عدد بین دو و سه نگاه میکنیم که از چارتا قسم یعنی از تبایون و تداخل و توافق و تبایون تماسل تداخل توافق و تبایون از این چارت کدوم یکی بین سه و دو چه رابطه وجود داره تبایون حالا که تبایونه در همدیگه زرمشون میکنیم دو ستا میشه چند ششتا ششو بیاییم زر در اصل مسئله میکنیم اصل مسئله ما چند بود؟ دوازده بود شش دوازده تا میشه هفتاد دو بس مسئله ما از هفتاد دو تصیل شد ولی اگر در همین مسئلهی مثلا عدد رؤوس های هر دو تا سه تا میبود یکی رو انتخاب میکردیم زر در اصل مسئله میکردی اگر توافق بود و هسه یکی از اینا رو در دیگری ضرب کردیم بعدش در اصل مسئله ضرب کردیم و اگر تداخل بود عدد بزرگتر رو می‌گرفتید در اصل به سره ضرب می‌کردید حل میشد حالا به خاطر اختصار و از اونجایی که صوتیه از این جای کار به گوش میدیم دیگه که تحصلو و اربعه اقسام دیگه نسبت بین این اعداد مثبت یا رواجه 4 قسمة. يعرفها الماهر في الأحكام. وانه كدر أحكام الماهر. وانه مش ناسه. مباثلون. يا نسبته من الأدداء صابت شده. كيف در يبكوش بيديو يسيب. يا مباثلون. من بعده مناسبو. يا مباثلين. مثل همان. مثل دو, تا دو دو. سي و سي. چار و چار. پنج و پنج. من بعده مناسبو. يا مناسب هست. كمون. تداخله. وبعده موافق. يا نسبة بينها مؤتوافقها ومع ذهب موافق المصاحب يا نسبة شو مؤتوافقها والرابع يا والرابع المبايل المخالفة والشهار من نسبة كداران تابايلها وهم المخالفات اگر این عددهای مثبته یا رواجه تباسل بوده یکی رو انتخاب میکنیم تداخل بوده بزرگتری رو انتخاب میکنیم در اصل مسئله ضرب میکنید اگر توافق بودن وفق یکی از اینا رو ضرب در عدد دیگر میکنیم که بعدش بیاییم هرچی جواب در اومد زرم اصل, اصل مسئله و اگر تباعد بودند مثل مثالی که توضیح دادیم در همدیگه ضرب شروع میکنید هر در رو در اصل ضربش میکنیم اون باقید مثل تفسیش بیشه ورابی و المباید و المخالف و چارمین نسبت هست یور بیکن تفسیل هدن العارفو خبر بیدهد تو از تفصيل این شخص عارف فخود من المباثل خوب الان خودش داره بگه فخود من, المب... من المباثلین واحدا اگر نسبت مین این عدد های مثبت یا رواجه تماثل بود یکی رو اتخاب کن و خود من المناسبین از زائده. و اگر تناسب توافق تداخل بود عدد بزرغتر و انتخاب كن و خذ من المناسبين الزائدة و از دو عدد كي باهم تداخل و تناسب دارن بزرغتر و زائد رو انتخاب كن و اضرب جميع الوفق في الموافق و اگر ارتباط بين دو عدد توافق بود زارب كن وفق يكي ازينارو در موافق در عدد ديگه وصلوك بذاكا انهج الطرائق با این کار روش ترین روشو بپیما و خود جبیه العدد المبایلی و غرب و ولا تداهیلی و بگیر تمام عدد مبایل رو و در دیگری ضربش کن اگر نسبت بری این عدد ثابت شده یا رواجع تباید بود یکی رو در دیگری ضرب کن ولا تداهل و مداهل نکن فذاک جز اصحبی فعلمن هم میگه این عددی که ما پیداش کردیم ها همین در مثال خودمون که الان ذکرش کردیم که هفتاد و دو سه رو یک گوشه نمشتیم با دو رو تبایل وجود داشت به دو سه دو سه تا شیش بگه این شیشه، چه نام داره؟ فذاکا جزء الصحب فعل هم بگه اینو بهش میگه جزء الصحب، اینو بدون یا یه مثال دیگه بیاری یا یه مثال دیگه بیاوریم دقت داشته باشید. شخصی فوت کرده. دو تا زن داره دو تا خواهر شقیقه داره سه تا خواهر شقیقه داره دو تا زن داره سه تا خواهر شقیقه داره و سه تا برادر پدری داره خب دو تا زوجه صحبشون میشه چقدر؟ یک چارم تا خواهر شقیقه صحبشون میشه دو سیفو و تا برادر فدری که باقی بانده رو میبرد در این جای کار یک چارم داشتیم و دو سوم مخرجها چهار ها و سه اصل مسئله رو از چند بگیریم چار و سه با هم تباردن سه چار تا ذرمشون میکنیم در هم دیگه میشه دوازده اصل مسئله گرفته میشه از دوازده از دوازده تا یک چارم دوازده میشه سه میبره دو تا زوجه سه شد سه ببینیم که بینه سه و دو تبار وجود داره دو سوم هم میبرند خوهران شقیخه دو سه دوازده میشه هشت خواهران سه تا هستند تو سهمشون سه هشت اونجا هم زن ها دو تا بودند سهمشون همشون سه سه و هشت با هم میشن یازده یکی دیگه باقی میمونه برای سه تا برادر پدری پس در اینجا دقت داشته باشید دو تا زن هست سه هست سه قابل تقسیم نیست سه تا خوهر شدیجن، سهمشون هشت، هست هشت قابل تقسیم نیست، سه تا برادرن که سهمشون هست، برادر پدری که سهمشون هست، یک بازن قابل تقسیم نیست. اینجا چه پیش میاد؟ ابتدا رابطه بین سهم، عدد رو او نگاه می کنید؟ هستن دوتا، سهمشون هست سهتا تبار وجود داره. پس عدد روس یک گوشه یادداشت میکنید که دوتا هستن پسی دو. بین سه تا خواهر شقیقه و شون که هشت هست بازم وجود داره پس عدد روس این یک گوشه یادداشت میکنیم شد سه. پس دو رو یادداشت کردیم که دوتا از با سه تا خواهر شقیقه بین یک و ستا برادر پدری بازم تبار وجود داره تعدادش سه هست سه و یک گوشه یادداشت میکنیم. پس با عددی رو که ثابت کردیم دو هست و سه هست و سه سه و سه با هم تماسولند یکی از این ستا... دوتا رو انتخاب میکنیم شد سه سه و دو با هم چه هستند؟ تبایونند پس سه رو زردردو میکنیم میشه شیش به این شیش میگن جز و خوب خب جز و رو در اصل مسئله زرد میکنیم که دوازده بود شیش دوازده میشه دو تا میشه دو دوتا پس این شد تصحیح مسئله فضا فضاکه جزء سهمی فعلا منه این جزء سهمیست که اینو بدون اکاش تصویری میبود وحضر هدیتا ان تضل عنه برحذر باش هدایت شوی که ما باده ازید شوی ما که راه دیگی رو انتخاب کنید ازید روش کبراه بشی واضربه في الاسل الذي تأصلا بيجي اسل مساله رو زارب كن در واضربه وزارب كن جزء سهرة في الاسل الذي تأصلا در اسل مساله كمانوان اسل مساله حصل واحصي مال ماما وما تحصل وحفز كن انتراك حاصل شده است ببین؟ بگه جز اسهمو در اصل مسئله ضرب کن و ضبط کن و حساب بکن آنچرا که حاصل شده است در این مثال خودون 72 را بله وقسم هو خب 72 که پیدا شد یا جز در اصل مسئله که ضرب کردی هرچی به دست اومد اینجای کار بیا تقسیم شد کن که دیگه مسئله خوب به دست بیاد وقسم هو و تقسیم کن یعنی همین مصحح رو, رو كه جوابی رو که بدست اومد در این سال خودمون 72 رو و قسم رو این رو به تقسیمش کن بر, بر رؤوس بر صاحبشون دريش صورة شبيهه، وقسمه فالقسمه إذن صحيحه، تقسيمش كون بيجي إنجاز، تقسيم كردن صحيح دار بيا، يعرفه الأعجم والفسيحه، إنه هم أعجم، إنه غير عرب وهم فسي، عربي فسي بدوند، فهذه من الحساب جمله، إن أز حساب جمله هاي بودا، يأتي على مثالهن العمله، تبقى هم من مثال، عمل كردن تبقى هم من مثال بيا. یعطی الان مثال هدن العمل تبقیمید چیزایی که بیان شد عمل بیاد یعنی عمل حساب حساب بیراست من غیر تطویل نولا اعتصافی بدون طولانی کردن و بدون انحراف فقط بما بویره فهو کافی بس قانه باش بان چه که بیان شد تصمیل کافی هست حقیقتا توضیح صوتی خالی سخت هست ولی اونایی که یک کمی میراث خوندن براشون نشخص هست، الله که بتونیم آینده، امکاناتی فراهم بشه که تصویری میراث توضیح داده بشه، موفق و معید باشید.